در نظر بازی ما بی خبران حیرانند من چونینم که نمودم دیگر ایشان دانند عاقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند جلوگاه رخ او دیده‌ی من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه می‌گردانند عهد ما با لب شیرین دهنان بس خدا ما همه بنده و این قوم خداوندانند مفلسانی و هوای می مطرب داریم آه اگر خرقه پشمین بگروند تا وصل خورشید به شب پره آما نرسد که در آن آینه صاحب نظران حیرانند لاف عشق و گل از یاف زهی لاف دروغ اشبازان چونین مستحق هجرانند مگرم چشم سیاه تو بیاموزدگار ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند گرب نزهدگه ارواخ برد بوی تو باد عقل و جان گوهر هستی به نسا رفشانند زاهدر رندیه ها فیز نکند فهر چه شد دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خانند گرشبند آگه از اندیشه ما مقبچگان بعد از این خرقه صوفی به گروه نستانند